بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین و صل الله عنه و حمد و عاله کلام نسبت به میته بود و در مجال طرح روایاتی بودیم عرض روایاتی بودیم بررسی روایاتی بودیم راجعه به میته چه خرده فروش و چه مطلق انتفاق بحث کرد بحث دیگری که مربوط میشه به نماز و مانعی دیگه اینا جاش اونجا نیستن ما در این تقسیم بندی که برای روایات شد نوکه اینا رو یک تقصیل خاص به خودش بکنیم یکی اینکه که روایت رو با خاطر خصوصی مقدم داشتیم تبسته شده اون روایت برای جواز انتفاع و خرید و خروش پوست خصوص پوست نه بسمت های دیگه طرف دوم که به عنوان عجزا مبانه از حی آمده مثلا حیوان که زنده هست مثلا دنبشه میچینن یا پرسون دستشو پرسونی دستش رو کسی برید پردام پوستش کند و بخواد مصرف بکنن این اجزار مبانه از هی این هم خودش یه طایفه روایات داره البته آهایان ما این روایات رو در دو بخش رو بردن این بخشی که دلالت بخش رواز انتفاق به نیت داره یه در اشتر که داره در عدم جاز انتفاع. ما اینا رو یک جا آوردیم یعنی به جای چیز به اصطلاح یک جا متعرضه شدیم این روایات رو مرحوم صاحب وسائل قدست رو هم در کتاب زبایه آورده نستید در کتاب زبایه ایشان آورده در باب سی ابواب زبایه چون کتاب سید و زبایه رو ایشون دو بخش کرده یکی سیدیگی زوایه در نوعی در اصطلاح عربی حیوانی که انسان میتواند اهلی باشه با درتر در بروزه زو میگن و اونی که اهلی نیست به معروف فراریه با تیر و با تفنگ و با ایدو چیزا انسان اون کار میکنه اون رو سید میگن ازا طبیعتا سید در اصطلاحشون غیره زنه هی زنه اونی که انسان با درف انجام میده و سید اونیست که با شکار کردن همون لفظه سیدم شکار رو و در لغت عربی سید به دو معنی آمده هم به معنی خود حیوان شکار شده هم به معنی عمل سید شکار هم در فارسی همین جوره مین یعنی امروز بشت شکار خورده یعنی حیوانی که شکار. یا یعنی امروز به شکار رفته بوده اون دوفعل. نظد شکار در فارسی مثل سید در عربی و هر دو معنا اطلاع میشه. اما این هست این بحث را دارن که گاه اینا جای همدیگه رو عوض میکنن. اصلا یه یعنی گاوز وحشی شده دااب عادتا ضرب میشه. حالا وحشی شده نمیشه نگشته باش،قابل ضرب نیست میشه سیدش کرد اینادا یعنی با تیر بزنه. یا حیوانی که سیده اما الان نگرش داشتن فقط اون شیر الان نگرش داشت ولی حالا دست هم پاشم میشه برو با تیر زد یا نه با رو دیگه سر بارید سر نکرد تا نفرمونی در کتاب های فقهی در مقابل سید این اصطلاحش و موضوعش هم در مقابل همه لو که در بلااظه موضوعی تداخل پیدا میشه وقتی سید صلاحیت ضرب بده میکنه های حیوانی که میخواد زعب بشه از خلاف خارج میشه سید باد بشه اونم روایت داره که گاوی وحشیش برور از از اون از با تیر بزنیم علایه حاله این اصطلاح رو قدر فرمایید ولذا فوقه های ما هم تو اون بخش دو بخش دارن یکی سیده به که کاره یکی که سر باشه این روایت رو در باب زعبه امرده مرحوم صاحب در چون این تقیید نبوده مثلا فرسوین این روی دیگه در باب اجزای ریوان تو سابه سی رو اوبرده فرم و در بحث ات اموه اشربن مرحومش ساب وسائل اوبرده ساب وسائل من ارز کردم خیلی بابوها رو کوچیک گرفته گاهی هم تکرار میکنه در کتاب این چاکی که الان دست من هست صاف مرحوم های ربانی جلز شونزه صفحه 23 و 59 باب سی از عباب زبه و باز در همون جل جلد شونزه صفحه چهارسد باب سی و دو از ابواب اطعمه و اشرفه اطعمه محرمه در مناسبت اطعمه محرمه سال وسائل او برده. البته در باب اطعمه محرمه بله. ایشان فقط یه دونه حدیث او برده. تو اون یک دونه حدیث هم در همین باب سی زب شماره دو آمده تکراره یکی از معاخضات سال سوال همینه که این کارا رو میکنه خیلی نیازی بهش نیست مثلا در این باب یه روایت آورده در باب ات محرمه در که در اون باب دیگه چهار تا حدیث اهرده من این احادیث اونجا بزنش علایه حاله. ای این روایات رو من دیروز خوندم به لحاظ سند و مصموی اینها اما به لحاظ دلالت یه روایتش داره که این اصلا میتست ولا یونتفعو به که صاحب رسائل حدیث اول باب قرار داده اول باب سی حدیث کاهلیست قال سعد رجع ابا عبدالله و عمه امده تا از امام سوال میکنه راجب به قطع علیات غنم لابعثی به قطع برسون مقال این نفی کتاب علیه علیه صاحب این نما قطع امنه ها میتون یا میتون لا یونتفعو به دقیق بکنیم در این حدیث مطلق انتفاع آمده یه خصوص عکل نیامده حدیث شماره دو شماره یک هم توش یک مشکل سهل ابن زیاد داشت یک مشکل خود کاهدی داشت و من الان جنوریسی که مرحوم صدور همون رو نهارو کرده اگر زحمت آینه باشنم من ند صدور به کاهدی کتاب جلد نونزه رو یکی از آن همه انبالی بیاره محبت بکنه نشد نگاه یعنی اصلا به ذهن هم نهمه بود حدیث شماره دو که اون هم بازیگ مشکل سندوی داره داره اما تعلموا در اونجا در بابه فرنستس به هبه ها از این الیه ها از این چربی ها از این جنبه برای چراق استفاده رو کنی. اما تعلم و انهو یسیب و صوب و ید و صوب و چه ظاهرم به ذهن من میاد که در اینجا امام مخوان بفرمند که انتفا نمیشه کرد اگر کنم که من چیزهایی دارد. خود کاهلی علایی اشکال دارم. اگر ایشان درست باشه خود کاهلی تصویری مانعی نداره. شواهدی بر قبول هست این دو تا روایت روایت شماره سه که باز همین در سندش علی ابن نووی حمزه داره و اونم گیر داره قال انها میتتون فقط توضیح موضوعی داده امام دیگه تفسیر نکردن که حالا که میته هست لا یعکل یا لا یونتفه این رو هم ندرد حدیث شماره چهار که در قربل اسناد هست و بعد در جامع البزنتی در آخر سرائره و اده زیادی از فقهای های معاصر و غیر معاصر ما همین رو صحیح و سند تو این چهار تا حدیث سهی و رو همین میدنن اونم هم به خاطر این که در کتاب سرائره مرحوم ابن ادریس از کتاب جامعه بزنطی نرکرده کرده. رضا علیه السلام جامع بزنطی صاحب رضا قال سألتوهو زمیر سألتوهو را به از رضا برگرده و لضا این حدیث رو صحیح میدونن تو این حدیث داره که یویبها و یسر جبهها با عنوان روغن چراغ استفاده کنه ولا یعکلها ولا یعبیعها و چند شد پس از این روایت هم بارکه در میاد که اکل و بی جایز نیست اما انتفاع جایز نیست لذا این تا روایت رو اصحاب ما در همین کتاب های فقیه ما ما مثلا سه شده یکی شبخصان اولی با در اونجه نعب کردن که میتلایون تفعاله ها هستن این روایت اخیرم در اونجه رو که که میتلایون تفعاله ها و قد اکل و بی جایز نیست و که ما همه رو یک جا ببینیم اجزاء مبانه از حی به خلاف آقه خب این چهار تا روایت به لحاظ سند ارز کردید روایت همیری در قربل اصنات مشکلش همون عبدالله ابن حسن عبدالله ابن حسن. حسن. حسن. حسن نبی علی بن جعفر بوده و قوم آمده کتاب جدش رو نقل کرده نسبتا حالا نه می بگیم خیلی نسبتاً بد نیست به نظر ما ولو مثل مرحوم کلینی از این نقل نکرده مرحوم صدوق از این نصفه نقل نکرده بد نیست کسی که خیلی اعتماد روی نصف کرده در درجه اول مرحوم همیری است همیری اعنس کردم چون دو تا دارید یکی پدر اسمش عبدالله ابن به اصطلاح عبدالله ابن جعفره و یکم پسر محمد بن عبدالله م اونی که صاحبی کتاب تدره اونی که صاحبی پسر استاد کلینیست کلینی توی سنالهاش داره محمد نعبد محمد نعبدالله در استاد کلینی همین همیری پسره خب از سریم عبدالله عبدال حسن توصیق نداره لکه خب اجمالاً بد نیست نبه علی بن جعفره در اون زمان در قمرست بر این شد که ساداتی که از اولاده حضرت جواد بودن، خب می آمدن مردن به سادات رضاییه. در این کتاب تاریخ قوم هست. که الان این وزری بودن. و ساداتی که مثلا از اولاد علی بن جعفر بودن، مردن به سادات علوی. به زبون اونها عبدالله بن حسن علوی. چون جدشون علی بن جعفر بود، مثلا به جدشون مرحوم علی بن جعفر. ایشان در قوم آمد و کتاب جدش علی بن جعفر رو برای اهل قوم نقل کرد و قومی ها این نسخه اعتماد کردن. نه همه قومی ها عرض کردم صدوق نقل نمی کنه کلاسی از 990 آخری آخر یاد نمیخوام قدمای زیاده میگن میخواد اسمو عرض کنم که توثیقی هم با عنوانه نداره خب دقیق طریقه و هست که من همیشه عرض کردم اون که ایدهی از کتاب ها به عنوان میراث های علمی خاندان مشهور میشه عرض کنم الان نوه های مرحوم یا و الیرا با فاصله یعنی این کتاب در خاندان ما از مزیسی. اینه بسیاره نقل شده سند و سند یعنی به اسلام نصد به نصد دستگردون شده تا به ماها رسیده خب عبدالله بن حسن عبدالله بن حسن بن علی ابن جعفر نبی اول علی ابن جعفر ایشون باسته نداره ایشون این کتاب را از جدش علی ابن جعفر شینده و در قوم نقل کرده خب بعد نیست قابل اعتماد اجمالی هست این تا این مقدار رو چون ما هم که خبر سقر برمانه تعب تجمع شواهده بعضی از سوالات خبر صحیح باشه 90 درصد برای ما درجات وصول میاره این ممکنه 60 درصد 70 درصد بعضی سوالا به هر حال در می کنید یا قبول مطلقش می کنید یه درجه بین تا با شواهد دیگه جمع بکنید این یک شاهد این فرض این 60 درصد حالا می خاید بقیه جمع بکنم مشکل کاری کتاب علی بن جرفر هر شب در منابع ان شاء این کتاب کتاب مشهوری بوده نسبت به زمان خودش و توسط حتی زیگی ها هم و حتی بعدها اسمایلی ها هم نقل شده در میراث زیگی ها و اسماعیلیها ها و علیه جعفر ان ابیه نسبت داده شده یعنی به امام س... کازم نسبت داده نشده ان محمد بن جعفر ان ابیه امام ساده این نسخه یا گران در بهار هست توش سائل تو عبی داره این نسخه با ما هم نسخه دیگری است علایکی شماکان این کتاب نسخ متعدد داشته و زیادش عرض کردیم حتی میگم توسط مذاهب غیر امامیه هم نقل شده ها یا زیدی‌ها نقل شده باکه به امام صادق منتهی شده نه به امام کاظم مثلا اسماعیلی‌ها که به موسی جعفر اعتقاد نداشتن اینا ممکنه کسی تجربه تو در مرتبه تعلیم جعفر در همین کتاب دارمون اسلام هست این نفش اینه که اینا رو به نسبت میدنن به امام صادق نه به امام توضیح نشه این وقتی یادم کنم بیادیم خونتکار علایهن علی یعنی جعفر کتاب علی یعنی جعفر نام مسائل چند طریق به ما رسیده الان در میان نوشته آرما چند طریق هست حالا یه بحث راجع به ارزش کتابی نفسه هست چون یک اینه نیدم من مفرح کرده باشن ادهی از بزرگان ما که در این طبقه هستن نقل نکردن حالا چرا شما حالا نرسیدن مبین خدمتیشون نشده مثل ابن عبی عمی از علی بن جرفت نعمل. مثل صفار مثل یونوز اینا ندارن حالا غیر از این عدم ها نقل نکردن ها فیلنی بزن کنار اون نقل کردن ها رو به نظر میدیم ما ادهی از بزرگان بز عمروکیه علی بوفکی بوفک شده پوفک باشه اساساً حالا که کتابه اون که بوفکه مجد از جهات نشاوره ایشون توصیف شده از اجله اصحاب موسی بن قاسم بجری که از بزرگان اصحاب از اهل کوفه است ایشان نقل میکنه ایده از بزرگان از این کتاب نقل میکنه خب عبدالله الله بن که این نسخه رو ارث کردید یکی هم از زیدی که استفادیم چون نسخ هم در اختیار اسماعیلی ها هم قرار میده ما نسخ متعددی فعلا از این کتاب در اختیار ما هست بیش از یک نسخه اگر بخوایم حالا اون نسخه که دیگه نیست، اسم ببریم چهار نسخه اساسی هست یکی نسخه امرکی ابن علی بوفکیه نیشابوری که تا حد زیادی قبوله نسخه خوبیه نسخه موسط نقاسم که کاملا خوبه نسخه همین عبدالله ابن حسن که تراس به همیری به ما رسیده غیر از همیری هم تکتوک نقل داریم اما بیشترش همیری ایک از نسخه همون زیدیها و ها و اسماعیلی عدد روایات این نسخه هم فعلا مختلفه نسبت بین تمام اینها ها و خصوص منوشه یعنی ما الان مثل از امرکی ابن علی موفکی یا از بن قاسم روایت داریم که در این کتاب بهار نیامده از همه اینها بیشتر نسخه بهاره که از زیدی هاست یا از اسماعیی هم نه هفته حدود چهار ست تا حدیث داره نسخه عبدالله هم نه هستن اگر حافظه من که که خراب شدار خیلی دور قرط و پران نگیر فکر مگرم حدود دیگیست های چیزی که همون نسخه مرحوم کلیمی کلیمی و صدوق و شیخ توسی این سه بزرگوار ما طریقشونه که به علیه مجرد همون طریق موسفر قاسم و همرکی ابن علی بوفکیست باز هم این سه بزرگوار هم اختلاف داره. مثلا گای صدوم از علی بن جعفن نه که نه کلای نه حقه نه شهر نه خیلی و اینکه مسترشون یکیه نه موسف نقاسب یا نسخه همرکی و ولذا یکی از راه های خوب در نسخه در حدیث علی بن جعفن نسخه شناسیه دیگر آن یعنی روچند شد برشین مشکل کار اینجا در این حدیث اینه که این روایت منحسرن در نسخه عبدالله حسن آمده یعنی نه در کتاب کافی آمده نه فقیه عورده نه تهلیم در نسخه موسبن قاسم و نسخه امرکی نیشابوری هم مفرس کنه نیامده عجب از اینها در اون نسخه مفصل بهار هم نیامده و اون نسخه مفصل بهار در اختیار مرموم صاحب استعال هم مدرم و هم با هم صاحب بهار و مرموم اجزی و هر متعاصره نه در نسخه ب... مجلسی هم نسخه به وسائل هم نیامده این یک مقدار میتونه نقطه تضعیف روایت بشه به نت برمودی یعنی این میتونه یه مقدار گیرید نه اینکه خود علی بن جعفر سقه نیست اشتباه نشه به ساقت و جدالتیشان بالاتر از این مقدار کتاب هم ثابته مشکل این کتاب اشتباه شده بعضی وقت مثلاً میشه که ایشون سر و سوطوری چه رازی عجیبی نه نه مشکل این کتاب اختلاف نسخه کتاب به لحاظ صحت ظاهری حالا خیلی بولنداقتی به حساب حکم بخوایم بکنیم طریق کلینی و طریق شیخ طوسی و صدوق صحیح طریق هیویری چون عبد الله حسن نداره فعلا پیش ما و طریق مرحوم مجلسی و هر را عاملی که همین طریق هم در اختیار ساب دعایه بوده این طریق هم به اصطلاح میشه گفت تقیدان از عف طرقه از عف طرق این طریقه می روشن شد پس این روایت که بیگه انتفاق میشه کرد الان دو تا مستر داره یکی کتاب علی بن جعفر روشن شد بنوزنه به تاریخش برای شما به نسخه مرحوم همیری منفردان در جای دیگه هم نیامده البته یه نکته هست این احتمال هم تو که بعضی از واینام احتمال ده. این اینم بد نیست آن اگه کتاب مرحوم چیز رو دیدن برون نجاشی نجاشی در اینجا چپه استعمال کرد اینم ما واقعا تجربه آوره نجاشی میگه نجاشی میگه کتاب از این جهات دو نسخه داره مبدل و غیر مبدل بعد طریر خودش رو به غیر مبدل میونه که باب باب نیست اون طریر همین عبدالله بن حسن، انا عبدالله بن حسن. هست. اما این روایتی که الان در کتاب همیری آورده موذبعه. اثر کتاب مجیدی چاپلی است. کتاب نجاشی هم در اینجا احتمالاً چاپکی نوشته. نجاشی تصریح می‌کنه نسخه موذبر رو نسخه غیر موذبر رو با یعنی باباب نیست. این نسخه ایست که عبدالله بن حسن اجد بشناخته کرده. اما ما الان به نسخه همیری که برمی‌گردیم، این نسخه که الان چاپ شده، این موذبعه. این که الان چاپ شده در اختیار ما نسخه عبدالله هم نهستنه این فعلا مقبل بالم. این کار بعد از ایشان کردن یا نجاشی اشتباه کرده یک خرابی هم اینجا هست که اون گزارش گزاره مرموم گزارش مرموم نجاشی با واقع خارجی کتاب هم نمی‌سازه. سازه چپت با واقع خارجی کتاب الان یا حالا که تما کن این مستر اول حدیث مستر دوم حدیث هم در کتاب سرائر آخر سرائر به عنوان جامع البزنگی راحت در اونجا داره سائل طه میشه حساب جاوید البغدادی و قاضی زریسان همون سوال هم متنه من عرض کردم ظاهرا اون مصدر اشتباهی گفت داره حدود 10 15 تا حدیث رو در اول اون کتاب پشت سرهم هم نجاشی داره کرده سائل طه خیال کردن علمای ما سائل طه یعنی مرحوم بزرگی از عزاد از سائل طه واقعیت نداره اصلا تو اصناع اونها آقای نگه حال کردن مراجعه بکنن پس اون پوزه از یا ازش رو ذهنان نیست. چون در وقتش هم نشموردم تقمیقه ازش کنم در وسطش یک جا داره قال علیون و سعل اصلا داره همونجا اگه سراره خدمتون باشه یه هفتش تا ده تاشت که میگذاره بعد میگه قال علیون و سعل باز میگه و سعل به نام سعل توه این به نام علیون داره این علیون و از کردیم تا اونجایی که ما الان سراغ داریم در هیچ جایی بزنتی از علی ابن جفر نقوم کردیم هیچ جا نداریم که بزنتی یا ابن یا یونوس یا صفوان این تمره که عادتا ها با از علی ابن جفر میتونن نره حالا اگر کتاب مدربن نبوده یا مدین نره بکنم چی, چی شده ما نمیپنیم چی شده بزنتی ما الان جایی در کتب خودو بزنتی. از علی بن جعفر نهارفه رضا به نظرمه اون کتاب اشتباه کرده مرمومه سال و یه جامعه ای دو و بسرائه باشه مجموعه ای بوده پس این روایت مبارکه الان سندش گیر داره به خاطر عبدالله ابن حسن مسترش هم گیر داره به خاطر انفراد همیری چون مخصوصا کم میشه روایتی از علی بن جعفر هر سبا میخوام بگم دیگه چون اون نسخه بهار و نسخه وسایل، این نسخه بسیار متعددی حدود 400 تا به نظر بیشترش اصلا مستی یکی، یکی بیشتر داره. 400 تا باید داره از نسخه همیری به مراتب مفصل‌تره. نسخه بهار خیلی مفصله نسخه بهار هم نداره، نه اینکه نسخه کُلجی نداره. نه اینکه مشایخ طلات نداره. نسخه بهار هم به نسخه مفصلیز و ضعیفه، اون هم نداره. بزای این مطلبی که من این ندای شهر مجبور شدم به خارج بشم چون دیگه آین ما ما قدهشون نیست که ارسال مسلما ها که این حدیث صحیح است و جده حدیث صحیح بابه و این جواز انتفاع رو اش استفاده ده. و اما صاحب وسائل صاحب وسائل به نظر مبارک خودشون اصحه ربایت باب ربایت کاهی رو گرفتن از کن این صاحب وسائل در آخر وسایل تصریح میکنه. که در ایراد روایات در باب اثر فعل اثر رو میاره این مبنای اشاره است این هم. اون روایت کاهلی به خاطری که خیلی اصلا سهل بن زیاد داره خود کاهلی هم به قول آوین حسن اصلا سند صادق نیست من از این حرفه حسن اصلا به کار نمیبرم شما اعتقاد اعتقادش نداری نه این کلمه بلد نیست حداقل اون چون یعنی دیدم آین نوشته لكن اعتقاد داده چیزه بس مثلا اخرجه من حد الماده و حد الوصاله فلان حد ممدوه برای از یه این هیچ محسلی ندار دارید از تذیه عمرو لاغل زمان ما تذیه کتاب نرو رو چاک میکنم براغال سرفی نمونی رجل رجلان ابو عبدالله عليه السلام و اندهو انقط علیات غنم فقال لا باسه براتا ادار کنت تسله به ها مالک فمانا قال این نفی کتاب علیه علیه السلام اند مواقع امنها میتون لا یون انصافا روایتش آسبابه نه علا حقیقه و علا کل نورا انصافا متنش و تعبیراتش خیلی شیرین رو به و هیچ مشکل خاص نداره اول جواب امام راجی به حکم تکلیفی است آیا قطعش جایزه یا جایز می اون اشکال نداره ولی هیوان افتیاری داره که علیه بزرگ شده دوبش بزرگ شده کوچیک بشه اشکال نداره لیکن و ولایون تفعوده است انصافاً شباب، بعدشم مرحوم صدوق هم نعب کرده ایشنا با ادواته لذا دو تا از بزرگان ما تحضیبم که داره که از کلی نگرفته لذا من حق رو به صاحب وسائل میده این صاحب تو این روایات از همش بهتر همینه میتون لایون تفعاله و چون این حدیث از کتاب علی نعب کرده و ارز کرده یه روزی که صحبت شد شواهد نشون هم همون کتاب علی که پیشینها اهل بیت بوده نه اون کتاب مبزوله در بازار نه اون کتاب بازاری همون کتاب خاص بوده بیشتر قابل اعتماده لذا به ذهن میاد که انصافا این حدیث اولا در اجزای مبانه حدیث خوبیست و ثانیاً حکمش رو هم بیان کرده اجزای مبانه حکم میت رو دارن و میته هم لا یون تفع و به ها اسكلم اوغلان در کابل قبول میکنن میتهشون مرکز نفوذ حیواناته دفنشن الانم مثلا سر توی خود این مملکته ما هم از مرهمیدن کشور خودمون که این موارد مرغاشو مینیرن با توی چاه اینا رو مثلا قرار بدن یا بدن نفت بریزن بکوب بسوزونشون یعنی این سیره اوغلاریه است که این حیوان باز اینکه میته شد در معرض انواع آسیب ها و آفاتی شده از میکروب ها و ویروس ها و باکتری که دیگه لذا مثلا فرض کنید مثلا در تحبیرات شیخ هنسه صد ساقیه میخواین جا آب رو با این با جسد یک میته خب اون آب آلوده میشه ممکن میبه ها و درخت ها و چیزا آمون آلوگهی پیدا بکنن لذا انصافت حکمه اولایی ها محافظه با این مطلب که لایون به وجه حالا بعضی انتفاعاتی که مثلا به سگ بدن میته رو حالا اون بحث دیگر به الا انصافت میتون لا همون روایت علی بن جعفره که برای چراغ اشکال نداره اما نخورد و نفروشد این این و اما با قطع نظر از روایت ما سابقه این حکم چیه چون من اول ظاهرا سابقه این حکم اتفاقی است بین مصمی که اجزاء مبانه به حکم میده این در این جهتش بحثی نیست اون جهت که یونتف آبه ها عبلا شده محله و ما سابقه این احتمال من میدم دو که دوست جا دیدم نایدم. احتمال هم سابقش به کتاب برگرده اصلا این حکم که اجزاء مبانه از در حکم میت هستن میت این به خود کتاب برگرده آیه مبارکه در اول سوره ماهده همین آیه ای که علیوم ات مثالکون بینکون داره صدر آیه هر و دلی کن میت و در و المنخنقه و الموقوده و المتربیه و ما وما اکل احتمالا ریشه های اون بحث به اینجا برگرده چون گاهی گرگی حیوانی به یه حمله میکرد و نصفش میخورد خورد نصف دیگه دیگهش نموند در کتاب تفسیر قرطبی نموتن و کاروفل جاهلیه یاکلون یعنی می خوردند مثلا میاد میگن که گال شب اومده گوسنده نصفشو دست و پای ازش مونده اینو میخورن، خوردن بود در خوردنش لذا آیه مبارکه آمد که نه این هم حرامه و ما اکل الصب این ما اکالت سبوز شدی که از مصادیله اعذاء موانع از هیچ باشه چون اون حیوان داده میکنه نسبت به کارش میخوره می یا مثلا فزک کنید میکنه حیوانیم می در مثلا دنبه شوید دوست مثلا مبارز میفارم این اعذاء موانع از هیچ احتمالا ما حالا اون حیوان اصلا مزکیت و حالا اون بسیاری داره که اگر اون مقداری که حیوان خورده در بریش روح باشه از این لامادکیت و مثلا به همه برگذاره نتیجه و متردی و موجزه خب این آخریه بر میگه دو ما اکالت سبوز اصلا زکه تو پس به قرینه الا ما زکه ای تو اجازه میته حساب میشه دلت احتمال من نهیدم بلا خفش میکنم این ما که حال حیوان حالا چه ماشی برحال چیه؟ ما اکل از سبا حده رو میگیده فهم نه خفه غبه هم زنده نیست بکنم از ویکند خورد بار نسی دیگه اوزارو زنیم این مثال علی کیم ماکان احتمالاً حالا یک اصل قرآنی داشته باشه این اجزاء مبهمی که قبل بفهمید احتمال داره یک اصل قرآنی داشته باشه و قطعاً اصل نبوی هم داریم دوست متن روایت از امه هست ما اوبین من حین فهو میتون او میتون ما قوت امن حین فهو میتون اینا هم داره این بیشتر دادن در کتب اهل سنت هست لکن در صحیحین می و یعنی این روایت در و دیگه در هم میخونن در صحیح بخاری و مسلم و حتی مثل سند سالین هام ندارن ترمذی داره ترمذی داره این کتابشون و مصاد احمد دهبر هم داره علی احمد مصاد هم فکر کنم 223 صفحه 550 صفحه 260 دو تا هم میکنه اونجا در کتاب مصاد احمد السش رو هم نرم میکنه که پیغمبر وقتی اومد مدینه در مدینه رست داشتن علیات این دیگه همین سواله. من سوال کنم تو جبل بشه تو توی مدينه بوده. دنباهای غوسفند بزرگ می‌شدن می‌بریدن. ثقات رسول الله ماقت ابن الدهینه و هی حی فهی میتتون. این اصل نبویشه اینه. روشن شد؟ پس دو متن اساسی اهل سنت دارند. ماقت ابن حین که هو موقوت امن یعنی مت نحیه فیر حیه و حیه قیمه میتهن البته در متن اهل سنت فقط الحاق موضوعی ذکر شده و حکم کش نداره حالا که میته است لا یؤکل لا ینتفلا لا یسرج لا یبا اینا توش ندارن روشن شد پس اصل نبویش الحاق موضوعی بعد از پیغمبر اکرم هم من در کتاب علی تو در روایت ما داره که این کتاب علی املاء رسول الله بوده و کتاب تعلی به یدی فرق اون که در کتاب علی آمده با اون که از سن رسول الله شد بی کتاب علی ما امن حیه ما قطعه من ها شن کتاب علی ما قطعه من علیات غنم ولی میتون میتون لا ينتفع بها به این اضافه در کتاب عزیر ممیدان رو اون چی که از رسول الله نرم شده نیتونه یا نیتونه اما اونی که در کتاب علیم لایون تفعو به آنی که مدتی اینجا در خدمش دست داریم در که ما روی متون خیلی کار میکنیم یعنی تمام حمدتون رو روی متون بگذاریم به قطع فرمودی تساهل در متون متاسفانه خیلی آفات دری داره من فکر میکنم یه مقدار تساهل ماها علمای انلام ما در مطول یه مقدارش برمیگرده به مرمومت صاحب وسائقیشون تصاحبات دارن، مطول رو درمیقا نعمل نمی کنن بعد هم دیگه چون آران غالبا دیگه به افکار مرموم شیخ انسالی قبل سالله نسه یه معنوز هستن ایشون در کتاب و رسائل خودشون ترمیدن حدیث رو به صدور و جهت صدور و دلالت بررسی میکنیم ایشون این طور میگه در ر متن نوشته اگه کاشیشون بعدنم اضافه می‌فرونه که این آونی که بعدمونن منظور ناوین دیگران همه آونی که بعدش میخوامن همین ستاره نوشتن متن بسم اضافه کنیم میشه چهار تا رو متن کار بشه حالا در کتاب داوالم الاسلام تن علی و ابی جعفر اینجا من احتمال میدم باز همین از اون کتاب دوم علیه که مغزول بوده و اون روزم توضیح دادم و توضیح مفصلش در به جلساتی شبای پنشمه داشتیم از این مفصل افتری حالا حالش شده نه وقت این کار از که تا زمان عبی جعفر احتمالا این کتاب نقل میشه و خود امام باقر هم اجازه این دادن از زمان امام صادق ظاهر جلوش نه اینطور در کتاب دائم الاسلام ببین اینطور دارن علی و عبی جعفر ما الان این متن رو نداریم عرض کردم. یکی از مشکلات مذاهب شیعه مسادرشون ترخم کنه این یک نقطه ایست که تا حالا کم روش کار شده اگر خداوند یک حالی به من بده اینشالله اینا رو بیان میکنم مثلا ببینیم یک کتاب علی که در اختصاص اهل بیت بوده نه زیبی ها از اون مطلعه بودن نه اسمایلی ها یک کتاب علی که مبزور بوده در بازار بوده در کوفه نقل میشده اسمایلی ها رو داشتن, ها داشتن. باز شیعه از اون نقل شیء امامی بزرگمون صدم. توضیحاتش به من مفصله. این احتمالاً از همون باشه. ببینید معقده امن ال حیوان، فبان آنها قبل اندی و کل حیوان، فهوا می‌توان لایو کرد خیلی لطیفه. معلوم میشه که صادقانه نقص داشتند. ما داریم فهوا می‌تون لایون تفاوت. ب... فراشس ایشون داره فاهمه میتتون لایعکل یه یعنی نظرش به چیه نظرش اینه که انقضا جایز جه همین که انقضا جایز تقال عقلی نیست تو این نسخه عبدالله الله آمده بود. هم اومده بود فراشس خاص تاریخ رواه کلام بررسی کردین سه مرحله پیدا کرد اول در زبان رسول الله فهوه میتون اومیتتون حفظ توش نداره در این کتاب علی در نصر کاهلی فهوه میتون لایون تفعبه در یک کتابی از علیه که از ابی جعفر هم سلام الله علیمان با غیر اونو تقییم سرموند فهوه میتون لایون کرد و شبیه این مدره هم در کتاب مسائل علیه جعفر برادر و نوی ایشان نقل کرده که یوس رجبه ها ولا یعکن از وقت روایت کلن در اجزاء مبانه است، لکن به درز کل بابه میتر میخوره امید امید شد. پس معلوم میشه که ریشه های اختلاف مسئله برگردونی به قرنه اول و دوم و این زرافت صاحب دائم الاسلام اینا اینا متون رو با یک ظرافت های عجیبی انتخاب میکردن اینطور مثل ماها تصاحل نداشتن صاحبه میتتون لایو کرد ببینید و یوزد کل حیوان حالا دنبشو بریدین بقیه حیوان زنده از یوزد کل و یوکل باقی ببینید بایدام یوکل کل ببینید این عرض تر بود این یک مرد الان ما این مرد رو نداریم در علیه این متر در مصر رفته اما در کتاب اصحابان نیست. زمان این متن در مصر بین طبقه مرحوم کلینی و شیخ صدوق. کلینی 329 صدوق 380 ایشان 363 این متر در مصر رفته اما در حوضه های علمی ما نبوده. بله صحیح مصر حالا این دیگه شرحش مگه نواره اون بحث آره نگاه. باز حدیث شماره 2 داره در اینجا و امام جعفر محمد بله انه قاض ایشون یکی از امام صادق رحم میکن از همون دائم الوثاق کل شیء سقط من حین فهو میتته و کداله که کل شیء سقط من احوال فیلسوف انسانال و کلاله که کل شیء سقط من اعضاء حیوان و هی احیا فهیه میتتون این شبیه همون مطلیس که سنیا هم رسولانه حرف کردن و کلاله که کل روشه ساقت من اعضا الهیوان و هیه احیا فهیه میتتون فلا یعکل باز هم جداره فلا یعکل درافت دائم رو دیدو پس ایشان دو مطل نقل کردن یکی از هستامیر و امام باقیر یکی هم از امام صالح در هر دو ایشان نقل کردن فلا یعکل و ما داشتیم از ابل حسن اما که علم انهو یسیب و یه در رو همی حسن سلالله و علیه و حمد